کارگردان حسین علی لیالستانی بازیگران داریوش ارکمن جای خالی هر عاشق عاشقی نال فاطمه معتم این همه سال من این زه هم همه این بچه هم من تو نیا آوردم چیلین چیزی ندیده بودم محمد رضا فروتن همه میگن چرا تیتی جن نمیزد تیتی جن که بچه هم او آسمان سرگی رنگه تا چشم کار میکنه کنه با و دشت توی افق دشت به انبوهی از درخت میرسه. از افق دختری با پیراهن سفید و جاکت قرمز از کنار چند تا گاب که دارن چراکنن حرکت میکنن دوان دوان به جلو میاد بارون می کوره راهی از بین درختای جنگل پیداست ات سواری از دور نزدیک میشه. دخترم سوار گاری کوچیکی که پشت موتور دیگه ای شده وارد کور راه میشه. گاری موتوری از دور وارد جاده خاکی بزرگ میشه. دختر کوچیک گل فروش روستا با دست زرد به سمت گاری میان. دست رو به دختر سپید کوش سوار گارین دو هر دو از نظر دور میشن. کامیون بزرگ و قدمی زنگزردهی پهلوان از جهت دیگهی وارد جاده میشه و کنار پرچینی توقف میکنه مرزون آبادی پشت کامیون نشستن بعضی هم ایستادن پهلوان در کامیون باز میکنه و مردی رو به کل میگیره منتظر گلبرام میشه که با سبد بزرگی به سمتش میده هر دو به سمت کُلبه‌ی چوبی. قهرمان پیرمرد رو روی پله‌ی چوبی کُلبه زمین می‌گذاره. هی شویی‌پسر جان، زان به سمتشون میاد. دعا کن تیتی اینا رو بس بکنه بازنش. جون. کوبونو سلام شگول برو. گل‌بره بعد از گذاشتن سبد روی زمین از اونجا دور میشه. همه فکر زد که شده تیتی خدا کنه به مرادش برسه. تیتی دختر خوبی. نوهی منم هر هفته بهش یه دسته گل میده. اینجا ناپنه کنم نیست مادر فردام سر رامی هم رو بپرسم اشکالی نداره فقط باز هم رو شرمنده نکالید چه حرفیه فردا خودم نیام گیلواره میرسونن خونه شم شما هم نمیخوادین همه راهو پیاده بری به گیر باقام خونه بزره. خدا از بزرگی کمتون نکونه پهلوان دور میشه گلبره به دختر گل فروش میرسه دختر دسته گلی وحشی و بسیار زیبا به گل میده اونم با زرد به دختر میده الو علیکم چی جامیدی گلبره از کولرهه کلوه چوبی به سمت کامیون برمیگرده دخترم به دنبالش چند قدم حرکت میکنه. گیلا باجان پهلوان یک نکن اهلابانم به گلدرام میرسه زنم با فاصله کوتاهی بهشون میرسه این نبوی گلم هر افتی شبای جمعه میاد پیش پدر و مادر بزرگش مثل خود پشنگ گیلا با دختر دست گلی به پهلوان میده قردمی هم دنباله خلف خدا حافظ قهرمان به سمت کامیون حرکت میکنه کامیون از بین درختای پاییزی که خیلیاشون اوریان از برگن میگذره و متوقف میشه لوان با دست گلش از کامیون پیاده میشه اوها هم پیاده میشن. قلبان در نوش جان. شما راحت ده دور با دست گلش از کنار پهلوان میذرب و دستهکن. زنی دورتر سر قبر توی جنگل نشسته. گلبره هم سر قبر دیگه مییره و میشینه. جنگل شبیه بودین، بود. وحشی رو روی قبر میگذاره اون نمیشه. به درختی تکیه میده اهلوانم کنار قبر دیگه میشینه قبر نجمه است مرا فرستادی که و ایسار برم باد باده که بود این خاصی پسرمون مرگزیستن کسیشو ببینه ولی من ولی من دوست داشتم دو سه آخر کنار تو گلوه را به سمت پهربان میاد. دستی روی یه سنگ قبر میکشه. برای همه کنه نجمه خواهی که به آقا اگه تو زنده بدی هر بود. ماشین فیات سفیدی کنار کامیون پارک می کنه. خانم دکتر پشت فرمون نشسته. پیاده میشه. خیلی مام. آقای دیلمی از صرف دیگه پیاده شد. خانم دکتر در برای ستاره که بار داره باز میکنی. ستاره با آقای دیلمی به سمت پهلوان و گلبره حرکت می‌کنه. ستاره دست گل به دست داره. اون یه زن جوونه با پیراهن و روسری آبی. سلام پلم. سلام ستاره خانم. بهتری <تصف> <محترم> ستاره خانم؟ <تصف> دلم آجری گرفت پهلوان. دیلمی از کنارشون رد میشه احلوان نگران به دیلمی نگاه میکنه و با گل به سمتش میرن با دیلمی هم قدم میشن ستاره ناتوان کنار گور نجمه میشه سلام خوالا گفتن فقط چند ماه بعد از به دنیا آمادن بچه زنده میمانه پهلوان من بدون ستاره نمیتونم زنده بمونم پهلوان خودتو نباز میبریمش پا تخت به چند تا متخصصی دیگه نشونش میدیم شاید اشتباه تشخیص داده باشن امیدتو از دست نده نجم خانم تانسته بود هفت سال بعد از زایمانی زنده بمونه مگه نه پهلوان 40 سال از مرگ نجمه میکزره دنیا پیشرف کرده بله پیشرف کرده ولی مثل که دنیا برای درمان سرطان هنوز خیلی جوانه خودت جمع جور داریم یاد ستاره با اونه نزدیک میشه بفرمایید بریم منزل جناب حالوان نها راضره من که همیشه مزاحم شما هستم این جرفیه منزل خودتان می فرمایم همین همینی با هم راه می ده گل برای حرکت باز نیمونه سکتارم کنارش می نسده ستار خانه بله خیلی که من هی سرم همین همی دونه تیتی می میرم تیتی فرصت بده گل برای فرصت بده تیتی تی یعنی همون دختر سپیت با جاکت قرمزش کنار یک کلبه چوبی خیلی کوچیک که باره تو شم روشن کردن به دیواراش دستماله سبز رنگ دخیل بستن به شم و چشم دخته بعد از لحظاتی بلند از بین درختای جلبک بوش رد میشه بامای لکه؟ کنار کلوه یه چوبی بزرگی زن چاق و محسنی داره نون میپزه این مردی هم چند ثبت بزرگ رو بر میداره از بیه سوارش فرد میشن تیتی زن رو میپسه و بخشه نون رو بر و شروع بخاره به دویده ندار تیتی جم ندار ندار تیتی جم ندار خیابون در میستند سواری کنار موتورش ایستاده بود پیچ رادیو رو میچرکنه تیتی از دور کنار زن گاریچی که باهاش بده اومده ایستاده بهش نون میده تیتی رد میشه و به ستاره میرسه که دستش رو روی شکمه برامدش گذاشته قرص قرص نونم به ستاره میده گلبهرام كناری ایستاده و به تیتی خیره شده ستاره با معنی به گلبهرا نگاه میکنه تیتی خجالت زده با نون نگاهی به گلبرا از ستاره جدا میشه و میره گلبهرام هم زده و آشق به دنبال تیتی میده پهلوان كم نونورتر ایستاده تیتی نونی به پهلوان میده ممنون تیتی پهلوان نون و بو میکنه جای نجمه و پسرمون خالی هر دوتاشون عاشقیم دان بودن تیتی از کنار کامیون رد میشه را مسخ شده به تنبالش گلبره پهلوان نونو به سمتش میگیره گلبره با کارتی در دست نونو میگیره به پهلوان اشاره میکنه که کارش داره پهلوان سمتش میره مادم گلبره رو چی کارش کنم پهلوان دیگه با این حال زاد تحمل من تلکه همشه خودتون درگیر خانواده بلوتی نکنیم بید مرد لاغر و بارانی پوشی که شوهر امنه گلبره هست از کنار آقای سروفی همون مطور سواره رد میشه بزرگترین زن گاریچی مشکوک شده به سرامین که داره از مغازه تعمیراتی آقای شریفی دزدی کنه؟ درستان. به نزدیک میشه. لگه به قندوق می‌زنه و گوش می‌خوره. تگ آقای مشخول روی موتورشه. اینجوری میخواهی مرد من بشی؟ اینجوری میخواهی مرد من بشی؟ خواهد با سر حالو سر به ناز به صوفی سکر مبزن ها؟ چشم سر به ناز خانه مندار حوال سمون بیشتر جا میخونم داری چی میبینی؟ تو رو فی؟ اخوار همیشه هست بیا نون تو بکر این کیه؟ گوش؟ یعنی جورج بوش ها که به عراق هم کردن چه ای الهی زلیل بشی چی میخوای جون مردم عراق یار مست ها معلوم نیست سر نوشت به کجا ها بکشید یعنی سر هست خانوم نزدیک بود منو به کشتن بدی بسش میترسم یعنی شک دارم که منتو خوشبخت بشی اونش با من یه چکه عبدال زیر گوشت بزنم چهار پنج دردار خودید بچرخی شکه پنجه هفت سالت هم برطرخیشه چلو هفت سال خاطر جمع من تو رو آدم این شدیه چیزی حالا دیگه خاطرم جمع سر سوی نسان یه امینه تو بگفت باشه یه مردشور پیری توی این بود نمیده کجا میتونم پیداش کنم دیگه این طرف ها نمیتونم پیداش کنم یک ساعت که رفته سفر سفر؟ کجا؟ سفر آخره پارسل مرده عمرشتو داد به شما آقا اما ناراحت نباشی کارتون را پسرش پسرشم مرده میشوره خودش پدرشو شست لن شدی؟ اینجوری میخوای پونجم کنی؟ بارش به زندگی. دونی آقا غیر از مردشوری و امور مربوط به انواد تو کار تعمیرت هم هستم تعمیر رادیو تلویزیون، یخچال موتور سفارش آگه یه و کارت عروسی هم قبول میکنیم البته کارای دیگه هم هست که من اهم جیم بکن سروفی چقدر حرف میزنی وراجی میکنی مرد نباید زمین بمانه اه. اه بوشو بشین مقا سروفی به سمت موتورش میره و مردم موتورش روشن میکنه خدا آخر آقابته همه رو به خیلی بکنیم مخصوص من دست دو شش سروفی سوار موتور مرد میشه هر دو میرشی همزمان کامیون پهلمان هم که پر از مردم آبادی از شده مغازه رد میشه سر به ناز دستی تکون میده گل را سر کامیون چند قدمی رو. هفت ساعت بعد گولبرا هنوز خیره به جاده وسط ده و دستکنه ایست داده به که نگاه میکنه از پشت سر جیب بسیار قدمی و زوارده رفته نزدیک میشه فیرزن موهنائی با اصاب بیاده میشه مرادرشم همینطور نگاه کن نگاه کن نگاه کن گلبره جان 6 ساعته یه لنگ استادی رو به جده نگاه میکنی خسته نشدی سلام ببین خوشی سلام خانم دکتر واقعا فرهاد کوکم باید دوله گلبره لونگ بنداز خیلی عاشق کسی تو حرف باید فکری با بی. ببین بناه میون برمیگرده همه کنار <التسجن> می تا کامیون توقف سروفی سروفی شش سه ولی به تلاش خدای بموس حمام اول آخرش یکی شد آقا این سروفی هم با بولایی که گرفته برمیگرده منظور از ماشین <التسجن> پیاده میشن تیتیم امبراشونه شما زحمت نکشیم حالا من از سرای پوشید دنه احلوانم به جمع اونا نزدیک میشه گل برا دست رو در حضور همه به طرف تیتی دراس میکنه پدر بزرگ تیتی لبخند میزنه تیتی با شرم و حیای دخترانه به گلا نگاه میکنه همه منتظر اکسالعمالشن بعد از چند لحظه گل با لبخند میگیره و بعد دور میشه همه نگاهشون میکنه ستاره از کمی برتر با چند تا کسی کوچیک لابی به سمت تیتیه. سلام به در بزرگ. علیکم خدا قبول کنه ستاره خانم. ممنون. پنج باش دیگه. سلام فرمان خانم. سلام ستاره خانم. دیداستید؟ قبول بشه. از اصل این ترشیه مفته. دست مادر نکن. سسنا واشه گولبرجا یه بره ما اینو بگی برشت. یکی دیگه هم بده بدی باش بدی باش آفرین گولبرجا ای صبر کن دیگه و ففندقی به سمت گولبرا می حساب همه اون پولهایی که تو این سالا بلد خرج کردی تو دستم تو قرآن آخرش حساب میگیرم خرجی برای خوده اوه خب حسابشو با تو صاف میکنه پولت از گلوی این بچه چه میره اینو باید توی این سالا فهمیده باشی کنوکه به فندقی که خرس دزیده سیفونش می‌زنه سلام آقای سلام خانم دکتر سلام سلام سه طرفانم نامنی سه طرفانم سلام پاله ما سلام آقای مدیش بفرگ دست شما در نکنه سه این دست که نمک نداره نبایستی اصلا تو رزیر اول رو میکشیدم کجا آی شنو کی خویا کی ککو البارا این دیگه این بیچاره اما شهر تلف سر دست چه کسایی بزرگ شده پول پول قوزقتی مردم بغل حق العمل کاری دیگه جرأت داری پاتو بذار اونجا ببین چجوری دفنت میکنم چاره‌ای ندوت خاله درست جرأت ندارین یعنی پول دوزگی پولم ماش پایت سر پسیشه بده بگیر ببین الاخره تصمیه تا گرفتی آره؟ نکن تو هم شما بیارم بخار احتیاجی نیست هر قلطی دلن بکن اما هنوز به گلدران تنیم سن بیا بریم آش بخور بیا بیا بریم آش بیا بریم پیش پله بود بیا آقا بیا خیلی دوست داشتم خودم این رو سرتی که خانم بگم گوکی پوتا اومدی بله بهتر شما خودتون با امی ستاره؟ رو با امه گلبره داری بیدن ستره روسری بزرگی به گلبره خیلی قشنگ ستره خانه تیتی خوشش میاد آها آها چتی خوشش میاد دست در نکنه بیبی روسری رو به ستره یاد یادگار مادر خودم خدا برزنم ستاره روسری رو به پهلوان رد میکن. کن تیتی تیتی پشتش به پهلوانه بر می ستاره خانم گفت بدم به شما از جیبش دستمالی سپید در میره اینم هدیه خودمه یادگار نجمه خدا بیا من قابل شما رو نداره تیتی خانم تیتی دستمال باز میکنه. داخلش گردم بند گل درشت زیباییه لبخند میزن و دور میشه گلب با دست گلش به سمت پهلوان میاد بوان اگه تیتی بگنه چه خکی تو سرم رو خب وقت کارش نمیشه کرد نه جوابش نباشه خب برایم شغلتم باید یه فکری بکنه گوی همه همگی کنار خونه خب. تیتی هستن بیبی بی و مدیر رو خانم دکتر دورمیس چوبین نشستن برادر بیبی بی هم هست بیبی بی تا یکاش به درم حرفت رو گوش می‌کردم الله همو زنده بود مادره. چقدر این مادر خدا بیامورز من به پدرتو گفت این درخت پوکی بکن بنده از دور به خرج کلخر نرفس نص میگه اگر پدرت حرف مادر ما را گوش کرده بود امکان نداشت زلزله تو این منطقه تلفات. میگه چقدر سرنوشتشون شبیه همه آه. با این تفاوت که حمله هواپیمای عراقی باعث میشه یه ساختمان پنج طبقه رو سر پدر مادر تیتی خراب بشه از اون زمان تا حالا هیش که صدای قشنگ نوان تیتی رو نشنیده با قربان نوان نب... گلم بره تیتی بارو سریع ستاره روی دوشش نزدیک میشه سینی چای رو تارف میکنه ای دست گل درد نکنه تیتی به سمت بیبی تلا میگیره آقای مدیر و خانم دکترم چایی برمیدارن خیلی ممنون کمی دورتر داره بهشون نگاه میکنه تیتی خیلی زده به سمتش میره گل با سر پایین به گلا خیره شده طرف تیتی جان به چایی نمیخوام تو نمیخوام گل برا دست گلش رو توی سینیه تیتی میگذاره اجام بکنی تو وردر دیگه این واقعا نشی. واقعا رو چایی رو برمیداره بر بر کسی از تو نظر خواست چیزو بعدی گفتم مگه نه بیبی بی واقعا اگه برادرت نبود یه دقیقا تعمل کنه از که گفت اینجا چی بیبی این؟ بی تلا یه امروز کتا بیا هرچی نواشه برادرته پهلوان کنار بیبی میشینه پهلوان جان یاد نجمه خانم افتادم اینجا جاش خیلی خالیم میدونی بیبی تلا هفت سال بعد از به دنیا آمدن ایسار رفتن نجمه مادو تا هر سال به یاد نجمه باد بادک می فرستادیم چی مؤدبی بود خیلی مهربان بود هیچ وقت دل کسی رو درد نمی آورد ایثار بزرگ شد یادمه آخرین باد منو یک روز قبل از اینکه بره به جنگ فرستادیم آسمان فرداش رفت دیگه ازش خبری نشد به نظر من حتی مرگم نمیتونه بین آدمایی که واقعا عاشق همه شکاف ایجاد کنیم چشمای ما روشن عقایی بودی شما بله بزر یه خورده این گلبران سر سامان بدیم بعد پهلوان به سمت تیتی میره که چشماش پر از عشقه تیتی میدونم لعظات سختی رو میزه تیتی وغس کرده و به پهلوان نگاه میکنه شاید اینم تاوان قلب مهربان و پاکی که تو داری دختر پهلوان چند قدم دور میشه کلبر به سمت تیتی میاد اما تیتی چشمای خیس از اشکشو از کللب میدسته دوان دوان وارد جنگت میشه. بارون شدت گرفته. ستاره کنار کلبه چوبی پر از نشسته. شمای درون کلده همه گیر روشن. لباس ستاره کاملا از بارون فیس شده تیتی شال ستاره رو روی سرش انداخته دوان دوان نزدیک میشه صورت ستاره رو میگوزه کنارش میشینه ستاره بخشه سفیدی رو روی پاهاش میگذره و باز میکنه لباس قرمز زیبایی توی بخشه است. لباس هرسیم. این ذره روش کار کرد دیگه وقت اندازت باشه چی چی لباسو باشده میگیره چی چی بهت میاد خیلی دوست دارم عروسیت رو ببینم ولی اگه تا اون موقع زنده نموندم قول بده بچه هم میاداری کن و تنهاش نزده با خانم رفتن سنوگرافی پسره اسمش رو بداشتم میکنم تیتی در حالی که عشق میریزه ستاره رو بقر میکنه تیتی روی تخت سنگی جلبک روش وسط دو تونه نشسته تیتیزان <تصفيق> ستاره خانم با چه آورده ناورده پسره رو گل از پشت تنهی درختی که کارت عروسی خودش رو تیتی رو روش بیرون بیرونیه به آسمان با لبخند نگاه می کنه تنهی جلوک درختو درخت رو در آغوش میکشه کشه و کارت عروسی رو بر داره هفت ماه بعد درمونگاه تیتی و خان دکتر کنار تخت ستاره ایستادن. ستاره با سرمی در دست رای میکنه بلند بشه تیتی بچه ستاره رو بغل میکنه کنه به سمت پنجره میاد گلبه پشت درخت کاجی به تیتی نگاه میکنه با کارت عروسی توی دستش به پنجره نزدیک میشه ستاره هم به سختی به کنار تیتی میرسه. بار تو از گلدرامو گیره اگه نتنستم خودمم عروسی برسم دل گیر میشه قلبمان بیش توی صورت تیتی رو نبازش میکنه بقید جمع تو جمع ستاره تیتی رو در گوش میکشه <تصفح> دیر خوبه تیتی جان خیلی کار داری دیر وقت مردم برای تو گل برای روز قشن خوش خوشبخت شکنی دوچه خوشبخت بچه رو بخوانم دکتر میده که کنانتون استاده باز ستاره رو بخار میکن. بعد از اون از حراج درنگاه خارج میشه. زن بیچاره حاوی جرو کاغزا و های رنگی چسب تو توی فضای باز مردم ده جمع شدند. تیتی از اصل پیاده میشه. لباس عروسی ستاره رو پوشیده. یه تور سفید پر از های رنگی روی سرش انداختن. دل براه شلوار سفید پوشیده، پشت میز بزرگ سفیدی میشینه سروفی داره میرقصه مبارک دست بیوی رو میفره و کمی از اونجا دور میشن <متحن> خیلی توراست زدم به کاهو. ایلارجیم مفهم نکردم. بهتره به جای وجود نداره کی. چی گفیدی جان؟ آقا خانم مگر منو خیلی دوست دارم گفتم. آو آو. چیزی زالوا اثر بناس فاصله میگه. برابرناس قالو دونی همین روزا قهرره بندانم بیاین منزله شما برای خاصیتری. ولی دونی هنوز یکم شک دارم. یعنی شک دارم نمی‌دونم سربداس میزنه توی سر سونا. سرت کمال آها وره بی شک دارم شک دارم. شکم بردرم شد اینم کارت عروسی اتو دید. تموم بگه یه ذره کارت آبرا ببین آبرا وقت میشون دادن کارت عروسی نه ماشینی از دور نزدیگی چه ماشین آمولات آمولات اما همگی با نگرانی از جهاشون بلند میشن به سمت ماشین میرن دیلمی و دکتر از آمبولنس بیاده میشه ای بای بدبخشد بچه توی بقره خاندکتر ای خدای چه مسیبتی ها <تصفيق> بست دیدی چرا بیای؟ ایمانا، ایمانا. پالا رو پشت نشمن خاله ای ایمان. تیتی اتور سپید به سمت دیگه افجاد دمیده گل براه هم به دون تیتی خاندکتر با بچه به تیتی نزدیک میشه. تیتی گریه میکنه. فکر کنم باید بچه رو بسپرم به شما تیتی بچه بخر <تصفح> <تیتی> جان بچه را قبول بکن؟ این باچه مادر میخواد. <تصفح> هفت صد بعد ما انگار توی شکم تیتی هستیم. تیتی حامل است؟ جنی توی شکمش خوابیده. گردن بند نجمه به گردن تیتی تیتی دست نیکا رو که هفت ساله است در دست داره و آروم با دستی بر شکم برامدش نیکا رو از دریجه که کنارش ایستادن دور میکنه. کنه نیکا دستگول سفیدی به دست داره با هم نزدیک قبرستون شد نوم از عقدمون میگذره اگه یعنی سی سده چقدر داره صحبت خرج که نید شربانو جان دیرانی با شربانو که نره قبر ستره ایست بده انشاللت بعد از به دنیا آمدن بچه تیتی خانم همه مشکله حل میشه مادر بزرگ و پدر بزرگ چیسی از راه میرسه علیکسلام سلام علیکسلام سلام شربانو جان حالا چی میگفت آقای دیلمی حرف حسابش چی بود؟ هیچ چی آقای کشلی؟ شهبانو دورو شد طفلگی حقم داره. یه سال بیشتره که عقد کردم مرده که خجالت هم نمی کش یواشتر کشلیم بچه اینجاست میشنوی فندوته شوهرمه گل به راخ با مرغ دوزی از راه میبس یکی درست بشو نیستی که نیستی بی مصرف اه. دوزدی کار بدیه نه پوست کلاو همین دل دوزدی ها رو میکنی که بچه نوی گولم تیتی بدون یا نمیاد خود همون بکشتی تیتی داره قبر ستاره رو مشکل نیکا به قبر ستاره نستی سلام ماما دو بخشی که در دیر سلام <متلاح> پیخانم سلام آقا مدی سلام نیکا جان یه سای بزن در آماده میشه چشم آقا <متلاح>. مجیر با <متلاح> من دوسته داریه باد بادک دلوش میکنه که هر را با چی چی چی بدن نهامد آسمان برای خدا سلام پیخانم سلام حال؟ سلام نیکا من بلد نیستم باز بادک هوا کنم پهلا بون گل برا به تیتی نزدیک میشه همه میگن چه تیتی جان نمیزد تیتی جان که به چمان او دنیا میاد تیتی به سمت پهلوان که سر قبر نجمی نشسته حرکت میکنه سنگ قبر نجمه رو میشوره چه این کار داره همه رو هفت سالی که باهاش زندگی کردم از بهترین سالهای عمر من تیتی خواهیم بعد مرگش همه وجودم از هم پاشید و قلبم میتونستم تکیه کنم و پسری که خیلی چیزا از مادرش یاد گرفت. ش میدونست چقدر تنها ما دوباره توی شکم تیتی هستیم داریم بچه را از نزدیک می بینیم وقتی از شکم تیتی فاصله می گیریم تیتی کنار مدرسه ایستاده داره به عکس بچههایی که توی جنگ و توی آفریقا دارن می میرن نگاه کنه صورتش قمگینه اکسا رو مثل نمشکای کوچیکی توی حیات مدرسه در معرض دید گذاشتن. تیتی عشق میریزه و بعد صورتش رو دستش پنهان میکنه. نیا دست تیتی رو میگیره و با هم بین راه میره. دیلمی و شهبان نزدیک میشه. نیکا ازشون دور میشه و خودشو پشت تیتی قایم میکنه. دیلمی به سمت پهلوان میره. پهلوان. میشه اهلوان به تیتی نزدیک میشه. به مادرت گفتی قرار من کمکت کنم که باد باده که تو بفرستی آسمان گفتم میخواییم بفرستیم برای خدا خوب کاری کردی گفتی منم با آقای مدیر گفتم <تصفح> گل برو با باد کنکاش به سمت حیات مدرسه مید یه یه با با ببا ببا با با با. توی ده گلبرا با, با یک تونه بادخانک زرد رنگ که براش مونده راه میره به سربناز و سروفی میرسه که کنار مدرش رادیو بیش میده انگاه روح بکی تیتی همراه گل حرکت میکنه اما بالاتر از سر گل براست گل برا و سربناز و سروفی با هم, با هم حرف میزنه بعدش چند لحظه کل براد پیش اومد. در جنوب بغداد منفجر شد. در این عملیات تروریستی یه تن از مردم بیگناه ایرانی کشته شدند. که در میان آنها 12 کودک نیز دیده میشد. خاموشی شد. در خروش خودش چیست ماجر؟ خب چه کنایه؟ دیگه باید این کودک کشته بشن نه؟ من شدنا. سرویی. آها. ماسال منو کجا میبری؟ ماسال؟ هم. یه چیزی میگی مورگ پوکته تو گمش گندکه نه؟ ما اصل کیلو چنده مگه این گلبره و تیتی عروسی کردن به سلامت چند وقتی کم بچهشون به دنیا میاد ما اصل رفتن ما اصل من تو رو کشونم من تو رو زنده زنده دفنت کنم فهمیدی؟ این شد یه چیزی درسته صحبی سر به نز خانم نیکا نزدیک میشه روح بچه به دنبال نیکا میره. نکا نیکا به گلبره میرسه از دور دیلمی میرسته با دستی رویشون یه نیکا میگذاره شروطوری کسر سلام من نگفتن که میخوای باشه من خانم عروسی بگیری بری گذاشتم فردا بشوی حالا حتما باید بگی؟ نمیدونم شیدم نگفت خیلی برو نیکا به سمت گل برا و نیکا نیکا آسه این واقور خرس سبچه من نفر می‌کنه نمی‌دونم شاید بخور خیچی که تو میگی گل بره ها فندوقه که این همه مرغ و خروز میدوزه بچه‌ره هیچ مرغ و خروس نه نفر نگردن ها چی دسته فندوقه دو تا مرغ دوزیه دیگه هست آها آخخره ها شال بامو شال بامو آخیرسه منه امس نزدیک میشه جنب بکار ولا دنبالمون زنه بیوخته ببین کونم کنی رفته شاید تو کوه دره بنو. البته اگه بچی تو کار باشه. شماست که بچه به دنیا نمیاد. پوره تا پامپان. بچه دنیا بود، حالا آماده بود. ها، این جنان زمان. چه تازه رفتار، چه تازه گفتاره. جنن که آدمی گونه اینغاری جای جایندا باشه. کن. دیوانگی خیلی آبی. خوش شدی که نه. به ماشین بی بی چلا و برادرش از راه میرسه. بیوی تلا این کاری بکن بچه به دنیا بیام گلبراجم من چه خاک بستار بکنم این همه سال من قابله این دهم همه بچه هرم من دنیا آوردم چلین چیزی ندیده بودم گلبراجم انگار بچه ای تو خیال دنیا آمدن نداره من برم دنبال خانم دکتر روح پیدا کن برو برام. روح بچه داره حرفاشون رو میشن و حمل قدو از بالا حرکت خوابید با با. با. بچه های مدرسه با هم میز گنگپنگ رو حمل میکنن و به سمت مدرسه می. برا من نیکای اشاره میده با هم سمت خونه میرم. روح بچه دوباره برمیگرده پیش تیتی که کنار دریاچه ایستاده و به افاق خیره شده. تیتی دستشو روی شکم برآمدش گذاشته. لبخند میزنه. روح بچه توی آزمان حرکت میکنه و به سمت مدرسه بچه دور میز پنگ جمع جب شدن. دارند بازی میکنه. ماشینه بیبی تلا نزدیک میرسه با متوقف میشه. بیبی تلا بی به سمت ماشین میره. بی بی، خروس دوشوره من کارش تمام شده. هر روز مونده به شما گفته بگم. چی تو قشیه مدیر فندقی هم دزد. تو شرقی مدیر مدرسه رو دزدید از کنارشون رد شد. بعد نگاه کنن آقا مدیر، آقا معلمات بازی کنن. اما یه سیاه کلی اگر کنانی زاکان درسخندن یاد بگیرن پس اقلم بزر توبزتن یاد بگیرن ایتلا هماش نمیشه نیمیشه بازی اماد یاد بگیرن آقا میبینم قاری موتوری سرون ازم سرکست ایتا تو را سو بکنم نسی حالتی چی بده ایداد تو برای چیزم بکن مقاما نگفتم ما دریم یه اونجا سیسی آرش بله. نیکا میرسه خانم دکترچان خوش بودی بابا ده شد و من ماشین دیگه و عشقی ماشین خانم دکتر لگم محلما رو چی بازی بکنم واه چنم سیاه شدیست میزو برای نه خانم دکتر روزای اولی دیگه برای خانم برسه به بچه ها ازبطی عمیدارم برسه خول بدی خول همه به سمت ماشین بی بیرن س جومسیر بچه ها ماشین و میدن تا توی جاده جنگلی حرکت کنه و بعد همگی خوشحال و به دنبال ماشین میدن. گل برا داره خونش جارو رو میکنه که ماشین بیبی بی از راه میرسه و به کپی کار میخوره و توقفیم سلام, سلام گوی <تصفيق> همه از ماشین پیاده میشن چوف بر توفاند که این همه دل دوزی نه نسل نه نسل کج بودی با این کرای تو انتظار داری با چی تی تی دنیا بیار من انتظار دارم که بچهش بی تو اونجا از بس که تو پوسه و شمی سال دو سم سال آشنا خانم دکتر رات بهم کردی نه ولتی شیطان لعنت کو وای به حالت بیبی وای به حالت بیبی اگه امروز تکلیفش نشو نکنی الان یه سال بیشتره که میخواد زده هیچی معلوم نیست بجای اون فقط حاضر شو تو درست کن که آوری مرا برده کل گفتی بیبی تمام های شما رو طلب بگیرن اها اها گوش خانم دکتر و او اون اون کارت عروسی سر به ناز سروفی به عروسی می کنه. قشنگه. اتاقه؟ بفرمایید. خانیکی از پله های تراس خونه تیتی بالا می رن. گلبرجا جان. ناخوش جان. ها. کن تو که گلبرجا. سر به و سروفی وارد تراس می خوان بشن. توی بجا. تراس گل از گل می رن. ما همه غاره. روح تو. کسی چش. بچه، با یه سرشون حرکت میکنه. خونه رو دور میزنه و از پنجره وارد اتاق تیتی میشه. و دفتر میاده کنار تیتی روی تخت میشینه. صورت تیتی عرق کرده. سلام تیتی جان. انگار روی بچه رو داره میبینه. چشماشو میبنده. بچه دوباره داخل شکم تیتی میره و باز بعد از لحظاتی از تیتی دور میشه. خانم دکتر داره با گوشی به قلب تیتی گوش میده همه ناامید شدن <تصفيق> نیکا و گلبره گوشاشونو چسبوندن به دیوار اتاق بیبی تلاف بیبی بی. خانم دکتر خانم دکتر از اتاق بیرون چی شد خانم دکتر نمیدونم تا دو سه روز دیگه اگه بچه به دنیا نهید باید سه بیچاره گل برا. اصلا علامتی از فض بچه هست یه نه هیچ خبری نیست خانم دکتر چرا به چه من به دنیا نمیاد بیبی تلا تو, تو این سی بگون چرا به چه من به دنیا نمیاد گل جان چطور دنیا بیاد؟ چه همه ما رو می‌بینه، این فندکری می‌بینه، بالاتر خانم هم می‌بینه، اون موتاده می‌بینه، چطور دنیا بیاد؟ راز نگه دیگه، من این سرuffy هجلا هفتمی اخ آخر بچه امیدی دنیا بیاد. چاره چیه بی بیتلات، دنی، بلکه کیم بچه باید به دنیا بیاد، ها؟ خانم دیزل بی بیتلات، این کاری با کمکی چی به دنیا بیاد؟ من با سهم خودم خوش شدم، اخه این نمیشه هیچی به هیچی همچنین باگ باید یه کاری بکنیم خسله چه از کنیم همه آدمای درست درستی بشیم سرواز خودتون رو درست کنیم لباس خودتون رو تمیز کنیم روح و بمان خودتون رو تمیز کنیم فندوقی این دل دوزی خودتون رو کنار بذار بلوتن تو مهربانی بکن این معتاده ایم نفرسن این که نداره بشین این از خودم بخشش بغن شاید بچی تی تی دنیا آمد. منم با مردم صحبت میکنم خان منزل خودشونو تمیز کنم دل خودشونو تمیز کنم <تصح> تیتی پنجره نشسته روح بچه از بالا به سمت پنجره اتاق تیتی بر میگرده همه مردم ده دارن خونهاشون آبوجا رو آبوجار رو میکنن صروفی رو میسوزونه سوزنه کارگرها دیوارای خونه ها رو دوغاب سفید می مالن. زن ها ملاقه رو میشورن و روی تنابا پهم میکنن فرشاشون رو دارن میتکنن بعضی ها فرشاشون رو دارن میشورن قصد شما دارد قصد نقابو ما قابل باشی قنام روح بچه از بالای سرشون پرواز میکنه. تا به اطراف امامزاده می بزن پیرمرد موسفیدی با شلوار سفید توی امامزاده نشسته و داره قرآن میخونه. تیتی هم نمازشو داره تموم میکنه. کنه بلند سفیدش شه سفیدشو روی نردهای چوبی امامزاده زاده میذاره. دوزر خانم پهلوان و نیکاوو، و و سروفی و گلبراب و شهوانو و دیلمی ایستادن و دارن کارتهای عروسیشون رو نگاه میکنن سلام سلام کارت عروسی رو به پهلوانی پایی هم پیش بفرمایی عروسی من شهرانو تو یه روزه ها تشریفیانی خوشحال میشی این منم اینم صروفی مبارکه باشه سهرناز از خانم داری پهلوان من سهران از خانم تصمیم گرفتیم مثل دیلمی و شهرانو عروسی منو بنظریم بعد تولد بچه تیتی اهه اهه کارو خوبی کردین وقتی بعد از تولده بچه تیتی خود آها سنگی خود هیزارت کار داریم بشیم بشیم, بشیم. آه. خوش بشیم بفرمایی بش نیکا نیکا تیتی خانم ازیاد نکنی بیرونه بیا پیرمرد سپیپوش از امامزاده بیرون میاد با پهلوان رو بوسی میکنه پیرمرد به سمت تیتی و نیکا میره گلبرام بهشو نزدیک میشه روه بچه داره دورشون حرکت میکنه. سلام سلام قبول باشه قبول حق باشه بچه چیزی نمیخواد دنیا بیار نه کی رو گفته هم نمیگم ممکنه باور نکن. بچه چیزی بهتر از همه شدارات خودش درد می به دنیا آمدن چیزی نیست که سر هر بازاری اونو حراش کنن یه فرصت بینذیره میفهمی که چی میگه نه چرا نمیفهمی خوبم میفهمی زندگی سفرش شگفتنگیزه اولش ممکنه سخت باشه ولی کمچم کم زیبایاشو نشون میده <تصفيق> اون الان اینجاست حرفای ما رو میشنه ما رو میده بچه تیتی خودش میدونه که برای کل آفرینش یه موجود مهم خیلی چیدهای دیگه میدونه درباره خودش پدر مادر تو و در دنیایی که هنوز روش پا نداشته حتی درباره گذشته و آینده ممکنه خیلی چیزا بدیم بر اینکه به بچه قوت قربه لازم نیست جدای تردی داشته بگیم فقط بایش بهش بگیم که همه باشن حتی درخت ها و همه آدم ها هیچ کس تنها نیست هیچ کس تنها نیست پسیه سفره رمزالود به سوی نوره درکش کار ساده نیست قلبی پرس اش میخواد کسی که ندونه درد و چیه دستش خیلی خالی آدمای ترسو فرصت سفر کردن پیدا نمیکنند. کن بچه تیتی ترسو نیست اینا تیتی بهتر می دونه. فقط باید قلب تو تو دست بگیری تا عش به زندگی بتونه تضریح خوشه یه ذره جزارت مخواد گل پیر مردم میگوزه قبول کرده که به دنیا بیاد. درسته تر رحم مادر یعنی دنیایی که از لحظه به بهش از کرده یه ذره دشواره ولی دنیای خاکی خیلی قشنگه اینو خودش هم میدونه چلا نیروی زندگی رو در همه وجودش احساس میکنه خودش رو باورداره اگه ممکنه کمک کنه تو نگرانه یه بچهی که میخواد به دنیا بیاد برطرف باشه حق <تصفيق> داره نگران بشه. بچه خودش این مسیر پر رنج انتخاب کرده واقعا؟ واقعا بچه خودش این مسیر انتخاب کرده؟ بله پرده چه تو ممکن؟ درست پرده ما درکه این مسئله یه ذره سخته ولی حقیقت داره هستی راز بزرگی روشنتر از خاموشی چراغ آقای ندیدم و سخنی بحث بی سخنی نشه میدم ساکن سحرای سکوت شدم و صدره سابری در پوشیدم مرغی گشتم چشم و از یگانگی پر او از همیشگی در هوای بیچه گونگی میپریدم کاسه شامیدم که هرگز تا عبد از تشنگی او سیراب نشدم آه دل به دریا میزنه روح بچه بالا میره تیتی و گلبهاب و نیکا با هم داخل انبوه درختان میشن و هلیکوپتری از توی آسمون رد میشه برمهدبان توی تراس امامزاده نماز میکنه مهر رو می, کنه. می بوزه. بلند میشه آاسایی بلوزش رو پایین میده. از پله ها پایین میاد و نیکا رو که روی کپی کاه نشسته نگاه میکنه. اگه بچهیه بر دنیااد من برای تشتم بود که کنم من چی به خودم که ده کنم گلبهرا توی تراس خونشون در چمیدون کوچیک سفیدی رو باز میکنه و یه جفت پاپوش رو یه کوچیک آبی برمیداره روی ستون چوبی تراس با پاپوشا بازی میکنه تیتی توی تاریکی ایستاده و به بازی نیکا نگاه میکنه مسا قبلا می‌دونستی تو من دوست داری مسافلا چی میخواده چشم مشو فشار میده علامت آره کسی ام ما با چه ما ری دوست داری مگی نه چونیکی چرا گل رو تیتی را دوست داره؟ تیتی با سر تایید میکنه کرد میاد غم بزرگ که توی صورت تیتی میاد سلام سلام سلام, سلام دمی و شهربانو از راه می رسند شهربان ها گردن از گردنش باز میکنه و به گردن تیتی می رسد خاطر زحماتی که این چند ساله برای نکاح کشید. سربناص و صروف یام از را میرسن. والا. سلامتی مورد سربناص روی سرشه. کیجان تو رو خودم درست کردم برای عروسی. باشه اگه بهم میاد. آ. حالا گیو خیلی مام نزدیکش مامه شدی حالا حالا وایت تا حساب بودی ها ها این تی تی جان نبودی به دنیا آمده بود نکبات آباده بود شال دوزی میکیشی یک بسیاریم پله بی آمی اصی چادرش بیار لازمیت میشه گلبرد بیت پله هیچ رفتی به توزدیم خوروزای فندوقی نداره خودم جم کردم خیلی نکن شبون نداره بوشم دیدی من خودم جم کردم دیدی امه تیتی رو درم گوش میکشه <تصال> همچین میدشم از دست تو میدشم بریم رفیقه دوز فندوقی هم از را میرسه نیکا دورش نکنه برو بچه ایسی برو برو روه بچه دوباره وارد شکمه تیتی میشه بچه تیتی حسش دوباره روح بچه‌ها استیتی فاصله ان شاء مامان دست این آقای فندوقی پشت دستشو دخ کرده که دیگه بعد از این دزدی نکنه و یه زندگی جدیدی شروع کنه خدا کنه اینشالله به خاطر دنیا تیتی لبه تراس نشسته و همه اهالی احالی اطرافشن اسفندود میکنن یه دختر با با. میاد نزدیک نزدیکو گل زیبای وحشی به تیتی مارگ مرد تیتی سرش روی شونه های بیوی بی تلا چی شد؟ آهای؟ بای با تو جان بکنی بیبی با, بی بی با برادرشه بچه بالای سر بیبی بی پرواز بی میکنه به بی بی نستیک میشه نباش خوب ماشین درست میکنه از... هنس روپی لاخو بالی درست نمیشه از... چه مرگ شده این ماشین این از... سندل رود بودیده از... من همه تلاش رو میکردم نشون سروفی از زیر ماشین بیبی بیرانی بی آکه بار سرت تشکر آوروی من بردی آخه ماشین درست درن کاری داره آقا مردی شونم بخاری که مخید چیم من آقا کجا شون داری میرم قبرستان سبرستان برای چی مرده بشونم ایلال خدا من مرگ بیرم آقا سروفی برو ببینید جدیه که مرد شده یا روح بچه به سمت ماشین میرف و از پشت ششه ماشین اونا رو زیر نظر داری من ماشین خودم ندارم دارم آره آره نه کنید نکنید قره یکی شده یه فکر چاره بود پهلوان پهلوان که پهلوان را دیدید دیشب از بینکلا آمدن پهلوان را دعوت کردن چرا؟ اَه اگه مردمو بین کلاهم نظرم پهلوان بیاد چیه چی؟ امروز کشتی گذاشتن راست میگه دونی از امروز اونجا کشتی برگزار میشه سربین از خانوم میشه. احیطوه. آه احیطوه. آه خانم اجازه بده منم میشم اَه توه لا بری دنبال خانم دکتر ماشینم سالم تره راست میگه آخه بابا ماشین خانم دکتر که نمیتونه از تو این سنگ یا خرد بشه که من بدم دنبال خانم دکتر ببینم میتونم پیداش کنه میاد برو برو برو آقای مدیر با دوچرخش از جمع اهالی فاصله میگیره و وارد جاده میشه هم سواره ماشین بی بی و همه که شروع میکنن ماشین هفت دادن آهی تو یه ده پایین زننا و دختر و د ماشین پهلبون رو با یه دنیا از گلای زرد رنگ آارسته کرد پهلبان در ماش رو باز میکنه روی صندلی کوی از گلای وحشی زرد رنگ خیلی قشنگ شده. نه نوم بچه یک کچیک یک دستگاری به پهر برمیده حالا بون داشتیم نمیادی کشتیاری ببینی؟ حالا بون تا چم بگه این های آدم میشه پشیف تاشته باشه اینجا دیگه. کسی منو نمیشنسته بعد از احسارم من کشتی دیل مردی رو بوسیدم رو گذاشتم کنار. چه تیتیم امتظره منه اهلاوان نسانت کامیونه پر از گل میره و سوار شد حتی روی سخت کامیونم برکزشده دخترهای کوچولوی ده دنبال کامیون مدرد و گل پرتاق می به ده خودشون می رسه همیگی ازش را استقبال می توقف میکنه روح بچه به سمت کامیون میره از شیشه کامیون به پهلوان خیره میشه شه هم این کار بچه ها را حس گرده. سرشو بالا میاره به بچه لبخند میزنه روح بچه از بالای ماشین به سمت دیگه میره همه کی تیتی رو از زیر قرآن رد میکنن اسفن دود میکنن بیبی داره همه چون رو مرتب میکنه گولبرا با چمدون سفید کنار سیتی ایستاده. ماشین، ها، ها، چه همین. خود هاتو بند بز، خود قادر خاصی خای باشی؟ تو خجالت نمیکشین بخوای با چی تیتی پاپس بکشین؟ آ. زیگ بر سر گلبره. آبره خانم دستور بموقع علاخم بشین. بشین. من برم دستی این ماشینه بکشم رو زمین مانده. تو همینجا بمون برو برو که بالای من شدی بیا جان بیا برای بیا عزیز با بیا باز شدن در ماشین کوهی از گلا جده پای تیتی میریزه برو جم ما دیگه تیتی و بیوی سوار میشه نکن برنامه واسه وظیفمون رو بدی میگم حشپسه بچه‌ی تیتی بر نیومدیم حشپسه تیتی برن میاد 니کار روی پای بیبی میشه ان شاء تیتی که دنیا اومد 니کار میبرم باد رو میفرستم واسه ما در ماشین رو میبندن, دلومشنو میبندن. دلومشنو باد باده که نیکا رو هم به بیبی میدم خانم دکتر و شهرمانو و دیمی و پدر بزرگ و مادر بزرگ و سروفی و بقیه همگی سوار ماشین شدن قمیه حرکت می‌کند. در کابل خبر می‌دهد که کشید از زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و استقرار نیروهای ناتو در این کشور بی‌ثباتی برابر افزایش یافته است. در پی انفجار بمب در سالروز استقلال بلاروس دولت این کشور تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرد وسط کوه راه جنگل تفرقه می‌کردی حالا چه خبر <تص> خبر بدید خبر که همون رفیق فندقی معتاده سوار ماشین میخواد بشه همه جند خودت کاری یا دوستی همه اونو پایین میدازن تمامی که سی سرنشینه یک اتوبوس که از بالای یک بول به داخل مدخانهی در سلوان رو کرد خوشش شما درست آه شما با یه هونبک دستش بهشون نزدیک میشه. هر جنده‌ای میره عروسی دخترمو دیگه تو معلوم برتره. سوار خب شه. هم با ویولا نزدیک میشه. اونم سوار کامیون در باز حرکت می با سربازان ناتوی مستقر در جنوب افغانستان چهارده سرباز ناتو کشته و هفت نفر مجروع شدن در این درگیری چهلو یک نفر از نیروهای طالبان نیز کشتشون تویه راههای جنگل حرکت میکنه که به گروه از مردم می رسن که جسدی رو بی بیزمون نگه دار چند قدم دنبالش بریم پالوان جن سبب داره همه پیاده می فقط تیتی توی ماشین باقی نوشه... نگران به تیتی می میکنه که دیگر مردم سیاه با جسد روی شونه از جلوی کامیون رد میشن و وارد جنگ میشن می به سوی قبرستون می رن چند قدمی بردقش می باد نمیکی به سمت کامیون بار <سیم> این روز از بالای درخت افتاده داشت برگار رو پرپر می کرد نیبی و پهلوان با همراه می کنار ماشین توقف می میگم باعث ترس بچه تیتی نشه بیبی تلا بی نگو پهلوان انگاری این برگا با آدم حرف میزنم اشتباه کرد پهلوان گناهشون چیه که قشنگه پهلوان جان من از هش سالگی با مادر خودابی آمورزم بچه دنیا آوردم این چه بودم من دنیا آورده بودم ایسار منم تو به دنیا آوردی پهلوان بله جان خدا رحمت کنه نجم خنومو وقتی رفتنش من فقط بلای سرش بودم شما و آقایی سر رفته بودین بعد بدک هوا کنی بند خدا نبید غزبچه یه هفت سالش مردنشو تماشا کنه خدا رحمتش کنه راحت رفت پهلوان بله اهلبان سوار کامیون میشه و روح بچه بالای سر ماشین می از از بین درختای انبوه جنگل بیرون چینی دیگه که دو تا مرد اونجا می‌خواستن عروسی عروس و جواد جمعیت سرم. همون آهادی تي کامپیوتر دست می‌زنه. کامپیوتر حرکت می‌کنه. در حملات وحشیانه 22 اسرائیل به نوار غزه هوا کنی تایید شد. شد ماشین دوباره از وسط درفت رد میشه با از پیچ جاده خاکی میشه پهلوان جن نگر در حال تکی خواب شده اینجا خوب و پهلوان پهلوان پیاده سای میکنند تیتی رو با سختی از ماشین پیاده کنند. دو تا چوب میارن و یه پارچه بهش میبنده. تیتی رو به سختی روی یه پارچه میذاره. تیتی رو از ماشین دور میکنه. تیتی درد داره. آه اوه چه پیشا آه روح بچه به شکم تیتی تیزی برمیگرده بعد از چند لحظه دوباره از شکم تیتی فاصله میگیره بیبی تلا پریشان و نگران به سمت سربناس که گریه میکنه میره. بچه بدانی نبینید بیبی اساشو به شهبانو میده کنار تیتی روی زمین زانو میزنه صورت تیتی از درد سپید شده انگار روح بچه رو روی صورت تیتی استاده خانم دکتر رو بیبی دستای تیتی رو محکم گرفته چرا خدا خیلی مهربونه. خدا کنه شرمند تیتی خانم نشین پالمون. تیتی چه؟ نه. مطمئن با شهر منده نمیشه زندگی خیلی قشنگه امیدت از دستن گل برم گل برم کن برم درست واا يا كياا هون هاي يوصل تماما هو ما دهي جوز از درد بيگوش ميشه و حالا روح بچه دوباره به شگمش برمیگرده. بعد از لحظاتی که انگار چندین روز طول میکشه، بچه به میاد بیبی بی به بچه ضربه میزنه که گریه کنه همه نگران نگاه می کنن سر به ناز و شهبانه همدیگر در گوش می کشن. با تمام صورتش میخنده بچه را از پشت برختها به سمت پهلوان و گل و اهالی میبرن همگی ناباورانه به بچه نگاه میبرن بچه رو به طرف تیتی می تیتی آروم آروم چشماشو باز می‌کنه. سعی می‌کنه حرف بزنه با بچه. نمی‌چینه. گلبه رو به سمتشون میاد. پدر بزرگم این طور. نیکا و اهالی هم نزدیک میشن. ویزا پاقدم پدرم مبارک تیتی جان. با عشق به بچهاش نگاه می آه... کنه حالا صورتش با لبخندی خوش. زیواش باشه درشت تبریکی خیلی خانوم جای ستار خانم خیلی خیلی نه؟ خبرم تبریکی مبارک بشت خداعش شدی بسید خوش نمی این چه روزه خوبیه نه؟ بله، خیلی خیلی مارا چان بزرگردی ساکر افره خودا چان، افره زروفی بیا، زروفی بیا، بلو، دانی؟ اروسیم با نصابه، ناز خانم دووتی، اه؟ خودم برای کتابتی جداگانم امرزده اه، اه، اه، اه زایمان، زاکو بی، خیلی ها شنیدی خودت خودت خودت خودت خودت خودت خودت می کنه خودت خودت دنیا خوش آمده سگ <تصفيق> همه اهالی با خوشحالی دور میشن گلبه سمت نیکا و پهلوان که دارن بادبادک نیکا رو توی آسمون به پرواز در میارنی خب عزیزان امیدوارم که از شنیدن این فیلم لذت برده باشی تا رادیو فیلمی دیگه خدا نگهدار